یک دو جامم دی سهرگه اتفاق افتاده بود و از لب ساقی شرابم در مداغ افتاده بود اثر سر مستی دگر با شاهد عهد شباب رجعتی می لیکن تلاق افتاده بود در مقامات طریقت هر کجا کردیم سیر آفیت را با نظربازی فراغ افتاده بود ساقی آجام دمادم ده که در سیر هر که عاشق وش نیامد در نفاغ افتاده بود ای معبر مجده فرما که دوشم آفتاد در شکرخواب سبوهی هم وساغ افتاده بود نقش می بستم که گیرم گوشی زان چشم مست طاقت و سفر از خم عبروش طاق افتاده بود گر نکردین و ست دین شاه یه یا از کرم کار ملک و دین ز نظم و اتصاق افتاده بود حافظان ساعت که این نظم پریشان می نوشت. و یه فکرش به داوم اشتیاق وفتاده بود